كل معروف صدقة إن من المعروف أن أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. شهلو دومين درس. إذ درسوا يا صحيح هذا مفرد. حديث حديث جوابر رضي الله عنه. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم كم يفعميان. كل معروف صدقة. هر كار خوبي. هر فعل نيكي. هر معروف هر خوبي. در مقابل اون تو پاداش داری ای برات الله می و صدقه هم میدونید پاداشش هر صدقی پاداشش نظر الله از ده تا هفصد برابر و شاید بیشتر هر معروفی هر خوبی از جمله خوبی ها که انسان شاید اون رو ناچیز بشماره و این من المعروف از جمله خوبی ها انتلقا اخاکا به وجه طلق اینکه با خشروی با لبخندی جناب تدر حديث دیگرین دیگر و تبسم که فی اخی اخیک لک بها صداقه تبسم لبخند برای تو یک ای رو شدن با یک برادرت با خوشروی براد صداییه این معروفه این که خوشرو باش خوشروی از خوش اخلاقیه از خوش برخورده خوش باش چرا همیشه خم بابروی غمگینی ناراحتی خوش باش بزار مردم از دیدن لذت ببرن دلشون خوش باشه با خوش بودن تو تو رو خوش ببینه ابی این یک خوبی خوبی دیگر و انتو فرقه من دلوی که دلو میدونید که دید همون آبند و همون حلبی که ازش از چاه و برکه آب میکشن اون دلو را که آب کشیدی از چاه هاش از اون آبی که برای خودت کشیدی بریزی تو ظرف برادرت فی انا اخیک در ظرف برادرت بریزی برات صدقه است. در مقابل این کار تو پاداش داری فما یعمل مثقال ذره خیرن یرا ما یعمل مثقال ذرت شرن یالا بس قاله یک ذره هستن برات روز قیامت خوبی نوشته میشه و در مقابل اون پاداش میبینی اگر بدی هم باشه در مقابلش عقوبت میبینی هر خوبی برات نازل الله پاداشی داره و پاداش‌ها نازل الله هم مضاعف پاداشان از الله مزاحف یعنی چند دین برابره الله پاداش‌ها رو چند دین برابر میکنه و یکی از اون چیزهایی که مهمه مه‌ به انسان شاید احتساب اج نکنه یعنی قصد ثواب رو نوشته باشه که مهمه که رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد یاداوری میکنه خوشرویی و خوش برخوردگی این نیاز به سب داره تحمل داره نیاز به تمرین داره که انسان خودش رو خوشرو بکنه خوشرو بسازه میتونی اینکه بگه من سرش یه تون باشم خشک باشم فلان باشم خصوصا در مقابل زن میگه باید انسان تون باشه که زن رو سرش سوار نشه و و آخر نه اینطوری نیست قاطعیت در بدرویی نیست، در تندی نیست، خوشرو باش ولی قاطع باش تو میتونی همون حرفتم با خوشروییت ولی با قاطعیت برسونی اینها با هم دیگه منافاتی ندارن چنانچه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم همیشه خوشرو بودن و خوشرویش منافاتی با قاطعیتش نداشته نعم. خال المؤلف رحمه الله باب ما یجب من عون الملهوف وأسند تحته حديث أبي ذر وحديث أبي موسى رضي الله عنهما وقد تقدم باب من دع الله أن يحسن خلقه حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن سد و بیست و و باب باب و مایجب و منعون الملهوف اون کسی که مسیبت زده شده اون شخصی که دلتنگ نیازمنده به دادش برسی یک وظیفه است. همونطور که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در حدیث ابو زر داشتیم یاد شد فتوعین صانعا او تصنعا اخرق وقتی که سوال میپرسه چه عملی انجام بدم که خوبه و ابو زر غفاری الله عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و یاری بکنه اون شخصی که اهل صنعت اهل کاره کاسبی او را بکنه در کارش یاری بده همچنین حدیث ابو موسی اشعری على كل مسلم صدقه قالو فان لم يجد فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق على كل مسلم هر مسلمانی با صدقه بده بعد قالو فان لم او ولم يفعل قال فيعين ذل حاجه الملهوف یانات بکنه یاری بکنه اون شخصی که محتاجه، اون شخصی که نیازمنده اون شخصی که بار سنگینه به دوششه، او را یاری بده در اون حاجتش شخصی مصیبت زده غم دیده 127 باب از عباب صحیح مفرد بابو من دع الله ان يحسن خلقوهو منظورش رسول الله صلی الله علیه وسلم که از دعاهاش این بود که بار الله ها اخلاقم را نیک بگردان، یه که بابو من دعاه الله، اون کسی که دعا کرد، الله اخلاقش رو خوب بگردونه. بله، اون قسمت از حدیث که امام درالرسول صلی الله علیه و سلم که جلو آینه شخص بیسته و بعد بگه اللهم كما حسنت خلق خلق الله ما کما حسن خلق حسن خلقی زیفه. ولی خب خود اصل دعا ثابت از الرسول صلی الله علیه و سلم. ولی اون آینهش ثابت نیست. اصل دعا ثابته که الرسول صلی الله علیه و سلم میفرمودن از جمله دعاهش: اللهم ما کما حسن تخلقه حسن خلقی بر همونطور که تنم نیک و راسته قرار دادی اخلاقم هم همینطور نیک بگردان انسان باید از الله بخواد که اخلاقش الله نیک بگردونه سبحان الله خیلی جالبه یعنی رسول الله صلی به تهجد میسته از دعاییه وهدنی لاحسن الاخلاق دعای وجهت یک از قسمت های دعا وهدنی احسن الاخلاق انه لا يهدنی لاحسنها الا انت هیچ کس نیست الله که من اعادت بکنه به من بده اخلاق نیک جس خودت اخلاق نیک پس از از الله یک داده ی از داده ها هست، یک روزیه، یک نعمت، اخلاق نیک روزی، محروم یه آن کسی این روزی نداره، تو خود خود محروم کردی و آن اخلاق بدت با آن تندید با آن خوشونتت، خسانته بیرام معلم، شاگرد از دست فراری نشنا شاگرد سایه معلمش با تیر میزن، متنفره، نفرینش نش میکنه، یک کیمی میره، والا سبحان الله ما معلم داشتیم در مدینه شب علاوه الله رحمه و اسكند فسی حجنتیارم، اللهم النور قبریارم. عالم خیلی بزرگی بود یعنی از اول کلاس تا آخر کلاس می ایستاد نمی نشست اگر نکته ظریفی در کلاس بهش اشاره میکردن کردن ما اگر طلاب صدای قحقه و خندمون همون بیرون اصلا خم ببرونه می نمی برد اصلا راحت اون مسئله هست از کنارش عبور می کرد عالم به تمام معنا بود یعنی آرزو داشتیم سر کلاسش بشینیم و کی میگفتیم گفتفتیم این میاد که اولین نفرم باشیم که یه کلمه از جملاتش مثلا از دست ندیم برخلاف خلاف بعضی از استات روحش و جانش و سایش و دلت و جانت سنگینه. نمیخوای ریختش ببینی. مدرسه بودیم دیگه منظورم عموم یعنی تجربه تجربهش داشتی. بعضی از معلمین این چیدی نه. و بعضی دیگر نه آدم آرزو شنیدن صحبتشون رو داره. اد عقیدمون بود. بعضی از طلا. سه یا چهار سال پشت سره هم تشدید شده بودن تا جای که بعدش رو می از بس که تجدیح شدم دیگه شک تو دارم تو اخی هم دارم چرا هم مردود میشم؟ هر سال هر سال یک سال دو سال سه سال چون نظام قدیم هم مرددوی بود تجدید میشدید که دیگه مردود بود دیگه چی نبود؟ بار کل اون در رو باد از اول می باور کنم من با گوش خودم شنیده بودم یعنی میشنیددم نفرینش میکرد یک. هیچ مر واحد سال آخری که ما باهاش داشتیم یعنی شاید بگم بیشتر دانش آموزا هم افتادن تو درسش و بیشتر هم نفرینش بی نش و همه اونها هم پشیمون شدن شیخ فوت شد همون سال الله رحمتش بکنه و قبلش الله نورانی بگردونه. غم و اندوه کل دانشگاه را گرفت خیلی خوش اخلاق خیلی خوش برخورد ولی در امتحان به قول خودش نانومتری نه میلیمتری ها، حساب می‌کرد ذره بینی یعنی طرف نمره قبولی اسد چند بود شش نمره میداد پنجاه و نه و افتاد و دیگه بیست و مونده ها. که برسه به شش بیست و پنجصدام یک سال تمام به خاطر این بیست و پنجصدام با دوار میخون هم نمیکرده نمیکردنیکه بگه که آه تراهمی بکنم ولی این بیست و اصلا طرف تراف با خاطر بیست و انسان باید دقت بکنه در دانش آموزا که اون حرس جوش برای اهمیت دادن به درس و مطالعه انگیزه در آنها ایجاد بکنه که اونها احساس مسئولیت بکنه که درس بکنه ولی دیگه نبی این اندازه که رقیب و عتید بر سرشون باشه که ذره ذره براشون بینی و حساب کنه که دنیاست الان خودمون از اول ابتدایی تو الان این همه چیز یادمون دادن از تقسیم و جدول و فلان و نمیدونم تانجانت و کوتانجانت و نمیدونم سینوس و کوسینوس از اون ریاضی و اون هندسه و چی یادمون هست من باور کن الان فقط اسمش یادم هست قد اسمی سینوس و میدونم چیه کو و میدونم چیه ولی بقیهش رو نمیدونم تانجان تو که تانجان تو یکم رحم داشته باشی خوصا در این باب ارحمون من فی الارض یا من فی السما خوصا وقتی که یک دانش آموز میبینی علاقه به ریاضی نداره چرا ما باید زور بهش بکنیم که باید تو این ریاضی را بیس بیاری یا باید این نمره بالا بگیری تو این درس چرا يعني باید این سازی باید به زور باشه؟ سعی کنت علاقه بساتید از ایجاد انگیزه بکنید ولی نه با تحمیل چون شاید این تحمیل ما سبب ظلم بشه بر حذر باشیم از ظلم کردن و خاصن ما هم از اون دانش آموز فوق توانش ظلمه چون داری باری بر دوشش که فوق توانشه باشه بعضی این تحمل رو نداره هر کسی در حد وسعش بسنج 234مین حدیث عنیزید ابن بن بنوس رحمه الله قال دخلنا علی عائشه رضی الله عنها ومادى بن نزله عائشه رضي الله عنها فقلنا يا ام المؤمنين گفتی میگه یعنی مجموعه بودن چند نفری بودن اومدن نزد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها و گفتی میگید ام المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق الرسول شلون چطور بود قالت كان خلقه القران اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قران بود یعنی چه قرآن بود اخلاق كرسول و رفتار نیک که رسول الله صلى الله عليه وسلم بار اون بودن قابل شمارش نیست که اصلا ما بشماریم از خوبی‌هاش یاریتی میکرد یاری فقیر میکرد شجاعت داشت، خوش‌رو بود، خوش برخور بود، نمیدونم عفد داشت، بخشش داشت و و و الی زیادند درسته؟ ام ال عایشه اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاصه میکنه میگه اخلاقش قرآن بود. هر چیزی که در قرآن دارید، از اون مکارم اخلاقی که در قرآن یاد شده، چه از اون کرم یوسفی یا کرم ابراهیمی و یا از اون آیاتی که دستور بعفة صفحة صفح حلمة حلم بورية عدلة همية إنها در رسول الله صلى الله عليه وسلم بود خذ العف إن الله يأمر بالعادل وصبر على ما أصابك فعف عنهم وصفح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بكسي بدبين نواشيد بدغمان نواشيد عفو كونيد خشمو نگاه داريت خشقين نشيد مراحت نشيد عفو دوشت وإلى آخر إن صفاتك يعد اینها در قرآن اومده و همه اینها رسول الله صلی و بر آن چی بودن؟ اوراسته بودن. این اخلاق نیک را تمامیش رسول الله صلی علیه و از اخلاق نیک رو داشتن و از اون اخلاقی بدی که الله ما را گوش زد کردن، رسول الله صلی الله به دور بودن. بد اخلاق، بد دهن، بد رفتار نبودن رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی متحلی به اخلاق نیک بودن، رفتار درست، کردار درست و دور بودن از هر چیزی که زشت و ناشایست و ناپسند بوده. و چن تا مسئله هست در کنار حدیث ام المؤمنین یک اولین مثلا رسول الله صلی الله علیه و دعا میکنه به حسن اخلاقش که اشاره کردی به اون بابی که ما بخاری گذاشته ولی حدیثش پیدا نیورد اللهم كما خلقي حسن تخلقی حسن خلقی خلقي چون جز شرط کتابش با سند صحیح بهش نرسیده خاطر همین اینجا یاد نکرد ولی خب حدیث ام المؤمنین عایشه رو آورد که رسول الله صلی الله علیه و اخلاقش قرآن بود اخلاقش قرآن بود و از الله هم اخلاق نیک را میخواست چنان در این حدیث داریم اللهم حسن خلقي حسن خلقي و در دعای وجهت میگفتن وهدنی لا احسن الاخلاق بس مستحبه که از الله بخواهیم اخلاقمون نیک بشه و باید رسول الله صلی اقتدا بکنیم هم اخلاقمون رو درست بکنیم هم از الله بخواهیم که اخلاقمون رو نیک بگردونه این یک دو اینکه ما امور زندگیمون رو با دعا بچرخونیم امرار معاشمون برخوردمون تعاملمون چناچو منی عائشه رضی الله عنها میگه صلی الله كل شيء و من عائشه میفرمه رضی الله عنها صلی الله كل شيء حتى الشسعه بنده دمپویتو حتى مز الله بخا فان الله عز وجل ان لم ييسره لم يتيسر اگه الله برات اسون نکنه و هم دست نمییاری میری بازار دمپایی بخری گیلت نمیاد پیراهن بخری گیلت نمیاد اصل الله بخا الله اسون کرد میخوای از اینجا حرکت بکنی بری توندرو میخوای بری بندر عباس میخوای بری خاپیم ما فرودگاه میخوای بلیط بخری بُرَ برم برام آسان کن سفرم دارم میخوام برم تهران میخوام برم فلان کشور فلان جا رسول الله صلی الله علیه و آله اخلاقش نیک بود الله سرشش رو اخلاق نیک قرار داده مدحش هم کرده و انک لعلی خلق عظیم اخلاقت خیلی بود الله و تعالی بولاست. ولی با این وجود تهجد می‌یشه و جهدی وجه الذي فطر السموات والارض بعد میگه چی و هدني لاحسن الاخلاق بوجهک الله مدحش صدایشش کرده پس از ما میطلبه که چی اصرار ببرزیم بر حسن اخلاق و خواستن از الله اینکه اخلاقمون حسن بشه خوب بشه اصرار باید داشته باشیم الحاح باید داشته باشیم یعنی از الله همیشه بخواهیم باره الله اخلاقمون را نیک بگردان و امور زندگیمون رو با دعا بچرخونیم همیشه با دعا باشیم زبانمون دعا باشه بارک الله فیک رحم الله والدیک الله پدر مادرت و مادرت رو به الله خودت رو خوب بگردانه انسان نباد زبانش به شر بره به بدی بره دای خیر بکن همیشه سوم من و شما از الله می طلبید که اخلاقمون نیک بشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام دعا می کردن ما هم باید از رسول الله صلی علیه وسلم یاد بگیریم الگوی ماست خاصن از الله و لازمه خواستن چیه این نیست که در این کتاب رو باز بکنی ادب رو یاد بگیری اخلاق یاد بگیری علم و عمل نه اینکه تو متواکل بشی باره الله اخلاقم رو خوب بکن چطور خوب بکنه تو نه یه حدیث رو بکنی دو تا حدیث رو بکنی ادب مفرد اصلا نمیفهمید چیه کی نوشته پا تو تهجد اللهم حسن خلقی اللهم اهدني الى الاخلاق خوب چطور اخلاقت خوب بشه نه تو خوندی و نه هم تو از رسول الله صص یاد گرفتی و نه هم بهش عمل میکنی چطور میخوای اخلاقت خوب بشه چطور میخوای اخلاقت خوب بشه میشه مگه نه باید اسباب رو بگید توکل چیه اعتماد بر الله با گرفتن اسباب از الله بخواه که اخلاق خوب بشه و تلاش کن برای چی جهاد شریعه هست ایک از عبادت هست بزوق ترین یک از بزوق ترین هاست برای رفتن به جهاد چی لازمه بدون شمشیر بری. بدون آسله بری. بدون زره بری. اینه میگه میشه استعداد میخواد و اعدو لهم اعداده این توکله. کله مس صطاعت اعداده از الله می که اخلاقت خوب بشه دنبالم باش که چه اخلاقی خوبیه دنبال باش که راستشان چه اخلاقی داشتن تو متخلق بأن أخلاق شيخ. قال المؤلف رحمه الله باب ليس المؤمن بالطاعان حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا 128 باب از عباب صحیح ادم مفرد باب و لیس المؤمن و بالطعان مؤمن اصفاتش وی جگهاش اینی که اهل تعانه زدن به کسی نواشه تعانه به کسی نزنه این تعنه چیه؟ الله خواهد اومد مؤمن تعانه نمیزنه یعنی اگر زدی تو مؤمن نیسی مؤمن تعانه نمیزنه اون کسی که تعانه نمیزنه کیه؟ غیر مؤمن الصفات غیر مؤمنه سفات ممنطنه نزدنه طنه زدن پس کار خوبی نیست ناپسنده. اگر مؤمنی اینه با دهله طحنه زدن بر کسی باشه اصل طنه تعن چیه؟ طن تو فللانم باشم شیر زدن با چاقو زدن با خنجر زدن به یک کسی جری هدار کردنشه. اصل طنه اینه. این طحنه زدن با یک چیزی که جر می برای خودش داره که حاد باشه از چاقو از اقره یا هر چیزی که برنده باشه یه جایی این عالم علوی داریم یعنی جای دار میره ولی جای زبان نمیره تنه زدن با زبان بدتر و سخت از تنه زدن با داره با خنجره شاید اون زخم پانسمان بشه ولی که اثر اون زبان بر دل نمیره مینشینه پانسمان نمیشه جاش میمونه به خاطر همینه که شرع ما رو بر حذر دونسه از اینکه کسی رو دار بکنیم قلبش رو دار بکنیم برنجونیم کسی صالم ابن عبد الله يعني سالم فرزند عبد الله کندو عبد الله حسبر اینه الله وقتی که عبد الله بن مسعود باشه ولكن کن اینجا عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنهما سالم میگه حسب نعم نق میکنه ما سمعت عبد الله لاعنا احدا قط هیچ گونه دیدم که پدرش عبد الله بن عمر كثير اللعنات بکنه ليس انسانا ليس انسانا ان الا انسانا السسناس. ليس انسانا يعني الا يغفر شنو چه آلبانی در سلسلی صحیح میاره حدیث 2636 که تنها کسی که عبدالله بن عمر میگه یک برده ای از بردگانش بوده کار بعدی انجام میده و اونجا عبدالله بن عمر لعنتش میکنه چنان قبلا قبلن داشتی اینجا اون لعنت همون تعنه هست که در مقابل اون چه کارش میکنه آزادش میکنه اون بردش رو آزاد میکنه سالم میگه که پدرش عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگوید تشینیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یم للمؤمن ان یکونه لعانن نباید یک انسان مؤمن، اهل لعنت باشه لعان مبالغه بر لعنت یعنی کسی که زیاد لعنت بکنه نباید انسان مؤمن. چون ما داشتیم قبلا که بعضی جهات لعنت کردن جایزه مثل لعنت کردن زنانی که بی حجابن مثل اون صحابی که همسایش رو آزار داده بود بعد رسول الله ص ص میگه که بزار وسو بس وسایل خونه تو بیاد تو کوچه بریز تا مردم بیا لعنتش بکنن بعد اومد اصفهانی کرد خب رسول الله ص ص تقریر کرده بود اینجا این لعنت رو به خاطر همین اینجا میگه که رسول الله ص ص فرمودن مؤمن نباید لعام باشه یعنی نباید زیاد لعن بکنه و فرزند عبدالله بن عمر میگه من فقط من یک بار شنیدم عبدالله بن عمر لعنت می‌کنه نباید انسان زبانش لعنت باشه زبانش ناسزا گویی باشه بددهنی باشه بد زبانی باشه بذتی گفته میشه این بد دهنی بدزبانی ما مجبوریم یه سری پرانتزها رو باز بکنیم چون بعضی ها نمیتونم بفهمم معنای این تعن و لعن چیه لعن دعا نفرینه لعنه یعنی دعا بکنی که الله طرف را از رحمتش به دور بکنه یک دعایی هست که از باب تن گفته میشه الله لعنتت بکنه رنجیدی اون رنجش رو تو رو انتقام میگیری با دعای بد کردن بر علیه و خب یک این طعنه عامه بحث بحث اونجا باب قبلی صدقه بود با حتی با یک لبخند. اینجا هست بحث آزرده کردن یک شخصی رنجوننش. با یک سخنی نادرست حالا شما در طول روز حساب بکنید یا طول عمر تو. چقدر از زبانتون بیرون رفته مثلا گفتید با یک شخصی رو رنجوندید حالا با اون الفاظ ناسزا اینا همه چیه؟ اینا همه طعنه؟ بگه عبدالله ابن عمر فقط یک بار یک انسانی را لعنتی کرد با دهنش رو رنجون اون برده یک بار آزادش کرد و کفاری گناهش بشه تو چقدر مردم را آزردی ناراحتشون کردی؟ اذیتشون کردی با اون زبانت، با اون زخم زبانت با اون بددهنید، با اون بدگوید، با اون ناسزاگوید زبانت رو نیک بگرد دل کسی را نرنجون انتقامت را با اون زبانت نگیر زبانت بذار عبادت کنه. زبانت بزار عبادتك كن ذك الله بكونه شو كزار وصفات كزار نعم تفضل قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي ملايك عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الساموا عليكم فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فييا دي بيستو سيو ششومين حديث عزا حديثة من من بخاري رحمه الله حديث من ممنين عائشة رضي الله عنها كميات يهود مدن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم صام يعني مارك مارك برشمام رضي الله عنها ومنو ولعنكم الله وغضب الله عليكم الله الله قال صلى الله عليه وسلم مهلا مهلا، یا عائشه، همسرش میگه یا عائشه،, عائشة. علیکی بر رفق، علیکی بر رفق توسیه به چیه؟ توصیه به نرمی، بخوشرفتاری، خوشبرخوردی، رفق داشته باشه، نر باش در تعاملت، علیکی بر رفق و ایاکی برحذر باش از خشونت، شدت، غلزت، تندی، والفحش، فحش ناسزاگویه برحضر باش از چی؟ تندی، خشونت با تندی جواب دادن با شدت جواب دادن با سختی و خشکی جواب دادن برحضر باش و همچنین برحذر باش از ناسزاگی نکنید این دنباله حدیث قبلی ها دنباله حدیث قبلیه زبانت عفیف باشه، پاک باشه زبان مؤمن باید همیشه پاک باشه ناپاک نباید باشه ناپاکی ها را گفتیم و اینجا, المؤمنین اینجا هم. مرتکب این اشتباه میشه این در مقابل کی؟ مسلمان هم نیست طرف مقابلش مؤمن نیست یهودیه اون یهودی هم خیرقاهش نیست اون یهودی هم داره میگه برگ بر شما در مقابل بدیه یک شخص یهودیه کینه مؤمن مومن معمور به چیه؟ که بر رفق ای مسلمان ای مؤمن وقتی که پیغمبرت داره با در مقابل یک یهودی که بهت ظلم میکنه میگه رفیق باش مهربان باش پس در مقابل مسلمان چی؟ از باب اولا از بابه اولا بابت باشی واضحه دیگه واضحتر از این قالت اولم لم تسمع ما قالو بر رسول الله صلی اللہ علیه و سلم دیگه ناکنید یک قاعده اصولی از اینجا برداشت میکنن علما رحمهم الله میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نباید در مقابل حرف یا فعل و رفتار ناپسندی سکوت بکنن اگر اشتباهی را دیدن باید اصلاح بکنه چون سکوتش یعنی اقرار سکوتش یعنی اقرار پس باید اون سکوت رو بشکنه اگر کار اشتباهی را دید اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار میکنه بر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها و من اعتراض میکنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید میفرمایند میگوید اولم تسمع ما قال میگه نشیدی که چی گفته اینا گفتن بر شما قال اولم لم تسمع ما قلت من گناه منم چی جوابشون دادم قبل لم تسمع ما قلت ردت عليهم منم جوابشون دادم اون دعایی که کردن بر علیه من منم اون دعا رو به خودشون برگردم گفتم وعلیکم فی السجاب لی فیه دعای من در حق اونها سجابت میشه ولا یسجاب لهم فیه ولی دعای اونان بر من استجابت نمیشه پس اینجا تذکر و یادآوری رسول الله صلی الله علیه و به من و شما بر مهربانی و با خوب سخن گفتن و نیک سخن گفتن در مقابل دوست و دشمن وقتی که در مقابل دشمن از ما میخواهد رسول الله صلی الله علیه و که نیک رفتار و خوش رفتار باشیم از باب علما و مامورین در مقابل مسلمان خوشرو خوش برخورد و خوش رفتار باشیم این وظیفه است این امره از رسول الله صلی الله علیه کی وقتی که به همسرش میگه علیکی یعنی باید تو بر این اخلاق آراسته باشی اسباب اولا من و شما ماموریم از طرف رسول الله صلی الله و از طرف الله جل و علا که اخلاق امرو درست بکنیم رفتارمونو درست بکنیم قال المؤلف رحمه الله حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء دیسوس یو هفت مین عبدالله بن مسعود الله عنه دیسوس یو هفت مین از حدیث سهیاد مفرد از عبدالله بن مسعود الله عنه کمی جویاتش فرمودن لیس المؤمن بالطعان مؤمن طعانیست طعانه گفتی طعنه میزنه به دیگران طعنه بر قلبش میزنه جریحه‌دارشو میکنه با حرفش با سخنش با ناسزا و بدگویی و بد بدسخنی و بدرفتاری درسته با تهنش طعنه بر قلبی الا میخواد غیبت باشه میخواد تهمت باشه میخواد دروغ باشه میخواد بهتان باشه اینا همه کردن شخص جریحه‌دار کردن قلب کسی این طعناست مؤمن طعانیست مهم من أهل غيبات الدروج وبهذان المؤمن ليس بالطعان ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان لعان كثيرة لعنات ميكنه أهل لعناته يعني سرزابون شخ الله فلنا نون لعنات ميكنه فلنا ولا لعنات ميكنه نصفاتهم من نيس ولا الفاحش فاحش فاحشة عسل فوح شوف فاحشة زناس ولكن بهار قفطاره رفطار النواسندي فوح شقفتة مشي فاحشة إيش تبغاه بهار گفتار و رفتار ناپسند گناه معصیت دختر دختربازی و نمیدونه همچین برعکس بر حجابی که سبب اون چشچرانی میشه همه اینها در جمله فحش وارد میشه هر رفتار و گفتار ناپسند فحش فاحشه چون اشتباهه فاحشه اشتباهه هر معصیت و گناهی ناپسند که قبیح ازشته میشه فاحش زشت مومن رفتار و گفتارش فاحش نیست یعنی زشت نیست حرف زشتی رو بر سر زبان نمیاره و عمل زشتی را انجام نمیده ولل البذی بذی بد دهن بد زبان کسی که زشت سخم میگه بد دهنه مؤمن این این خصلت هایی را نداره اگر هیچ این خصلت هایی را در خود دیدی بدون که تو از اون دست کسانی هستی که الله در حق آنها میگه وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفي إيمان زد شده إيمانا يورد ثانوس تمو سلماني بر حذر باش أزين كه إن إسلامت سبب شكته عذاب وعقوبات ببيني ثم ورث الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه في درجة إسلامه ومنهم مقتصد لدرجة إيمانه ومنهم سابق بالخيرات ثم عموري بر إن كه تلاش بكوني بر إن سابق بالخيرات وشيء لا انك مثل اعراض فقط ظاهر الاسلام ربيغي وباطنهش رهاكني باطن وظاهره را قال المؤلف رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن ابيه عن أبي الله عن النبي الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذل وجهين يكون امينا دویست و سی و هشتومین حدیث از حدیث صحیح ادم مفرد من بخاری حدیث ابی رضی الله عنه که مگید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا ينبغي لذل الوجهين ان يكون امینه اعتماد نکنید به کسی که دروست درنگ و درو و در حدیث دیگر در صحیح بخاری داریم ان شر الناس ذو الوجهين بدترین و پسرین مردم آدم درنگ و دروست بدترین مردم شرورترین مردم پسترین مردم انسان درست ان النشر الناس ذو الوجهين مثال ايش الله در القران ميزنه إن درو بودند ذو الوجهين بودند مثال المنافقين الله دار القران ميزنه چقد بده انسان مثل منافقين باشه واذا قال الذين امنوا قالوا امننا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما معكم انما نحن مستهزون مياد پشت تو من رفيقتم يارتم ياورتم ولدت حق وتوس. ميره پشت اون کسی که باش اختلاف داری؟ اون بیزارم ازش بدم میاد ازش جلوهت یه طوریه پشت سر یه طوری دیگه جلوهت یه طوریه پشت سر یه طوری دیگه من خیلی دوست دارم خاطرت میخوام پشت که به داد الحمدلله دستش راحت شد سایشم سنگینه لازم نیست بره پیش خصمتا دشمنتا همین که تو دل خودش یه چیزیه زبانش یه چیزی دیگه کافیه وای به حالت از این که بر زبان بیاری اون چیزی که تو دلت نیست فقط می‌خوای ظاهرتو درست کنی این تظاهره درو نباش درو نباش قلبتو اصلاح کن درسته الله تو رو مکلف نکرده کسی که بغزش داری بر سر زبان بیاری بگی آقا من من بغضت دارم من بدم میاد ازت طعنه بزنی توش تو قلبش او رو بیازاری تو معمور به این نیستی و معمورم نیستی که تو بیای تعریف و تمجید ادیش بکنی مدحش بکنی، ستایشش بکنی، تو آدم خوبی، تو آدم فلانی، نه، نه مأمور به اینی، نه به این تو مأمور به اصلاحی، تو مأمور به رفتار نیکی، تو مأمور به عمل خودتی، نه دیگران تو مأمور به کی؟ به خودت، به عمل خودت اینها تعامل و رفتار داره، رسول الله صلی الله علیه وسلم به همون یاد میده فردی که درست محل اعتماد نیست نمیشه بهش اطمینان کرد لا ینبغي لذو الوجهین ان يكون امینا نباید بهش اعتماد بکنید یعنی شما هم دقت بکنید در رفیق الرفقای خودتون اگر دیدید کسی درست بهش اعتماد نکنید اطمینان نکنید چون او بهت ضربه میزنه چون او نشانه از نشانه منافقین توش هست آیه المنافقی ثلاث در واقع 4 اذا حدث كذب وذات منا خان وإذا خاص مفجر ودروته وإذا عاهد غدر إذا أتوم من خان خيانته مية جلوبروت بھاد خوبة فشترد بھاد بده إن أزشان هاي شيء منافق نعم المؤلف رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال الأمو أخلاق المؤمن الفحش دویست سیو سی و نهومین اثر سر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که میگوید الام و اخلاق المؤمن الام لئیم لئیمترین یعنی پسرین و بدترین اخلاق پسرین اخلاق که شاید در یک مؤمن بیاد چه اخلاقیه؟ بدگویی بدگوی فحش بدرفتاری تنها بدگویی نیسته چنانچه قبلان گفتیم چیز فاحش زشته رفتار زشت و ناپسند. گفتار و رفتار زشت و ناپسند. به نظر شما شیشی را پایین آورده، موسیقی را بلند کرده. از کنار دخترها رد میشه. متلک میندازه. کسی تو دل خودش میگه. مثلا یه پیر مردی. یک, یک انسان حاقلی. به خودش میگه این کارش درسته. در مدرسه دخترها معمورو میذارن. معمور برای کی گذاشته؟ برای چار تا جوان لاوبالی. که رفتارشون زشت و پسند فاحشه اخلاق ایمانی ندارن به نظر شما کسی که اهل مسجد نماز این کار رو میکنه نمیکنه چقدر فرق بینه مؤمن اهل الله و اهل دین الله و بین کسی که اهل دین و اهل الله نیست مری لازم معمور داریم کی نیاز معمور داره معمور برای ما میذارن که ما رو رسعت بکنه والله کسی دیگه معمور میخواد کسی دیگه والله ما درصت بشه ما دعوتمون به به درسیه والله ما به خوبی دعوت میدیم رفتار نیک، کردار نیک، گفتار نیک بیو در تعامل ما نگاه بکنید، در برخورد ما نگاه بکنید. چی می‌بینید از ما؟ نه طمعی در مال کسی داریم، نه مال کسی رو می‌خوایم، نه تهاجمی با کسی داریم، نه به کسی ظلم می‌کنیم، نه به کسی طعنه می‌زنیم، نه غیبت می‌کنیم، نه دروغ نیاز نیازمندیم به نیاز نیازمندیم کسی بچه ما رو بگیره؟ بیاد رسد کنید. چرا آبروتون رو می‌کنید؟ این تلف کردن آبره، وقته. بعدا درست کردن رفتار راه داره. ده تا که هیچ 100 تا مامور مدرسه رو محاصره بکنی نمیتونی رفتار اون چهار تا جوان لاابالی رو درست بکنی کار کدوم یک بزرگتره کار منی که یاد میدم به جوان ها میگم که یک نفرم من مصلحم یا اون مامورهایی که دور مدرسه مدرسه رو محاصره کردن جلو مدرسه جلو جوان های رو گرفتن کدوم یک مصلحه آیا اون اصلاح میکنه یا فقط جلو رو میگیره جلو فسات رو گرفته اصلاح نکرده ولی من دارم هر دو طرف رو اصلاح میکنم هم اون دخترش که اسباب اون ناهنجاری رو نیاره که پسرا بیان تعرض بهش بکنن از اون بدحجابی حجابی و از اون چشترانی دختره تا پانده پسرا پا نمیدن هر دو طرف مقصرن همون دخترش همون پسرش منم مصلحم تو فقط داری پیشگیری میکنی تو فقط مجگیری میکنی ما باید در اصلاح را باز بکنیم نه اینکه جلوه اصلاح را بگیریم با جلوه اصلاح را گرفتن هزاران معمور و مجگیرم بیاری اصلاح ایجاد نمیشه این راه اصلاح نیست این راه پیغمبری نیست این راه دولت داری نیست اینها ها ها و درس هست که در این سخنان از رسول الله صلی الله علیه وسلم هست گفته‌های اصحاب و یارانش نفعه است که ما باید ازش درس و عبرت بگیریم سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله صلی الله علی آل محمد